بسم الله الرحمن الرحيم <تضحكي> الحمد لله والصلاة والسلام على رشالنا في البعض قال المصنف رحمه الله فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من الله به عليه من إدراك شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات ويحذر السيئات ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه ولسيما الصلاوات الخمس فإنها عمود الإسلام از مزرير رمضان از قلم افتاد که ما بگیم که ربطش با فرموده الله جل و هست در قرآن خود روزه یا صوم در تعریفش ما داریم در تعریف لغیش امساکه یعنی دست نگه داشتن در تعریف شرعیش دست نگه داشتن از افعالی خاص از زمان خاص, در زمان خاص افعالی خاص در زمان, خاص در زمان خاص دست نگه داشتن از خوردن و شهرت و غیبت کردن و دیگر افعال در زمانی خاص از تولیه تا گروه بخورشی این تعریف صلاح شاید مثلا بعضی ها نه حالا تعریفات زیادی هست برای روزه ولی خب این یکی از تعریفات. ها ها گفتن صبر کردن و تحمل کردن در مقابل غذا نخوردن نیاشا میدن. اینو صبره. خب ما داشتیم از حدیث قدسی که الله جلسان هم این که وصول مولی و به روزه مال منه من پاداشش میدم الله هم میگه چی در قرآن این ما یه حساب. سامولی و نجدی بس. روزه یکی از اعمالی هست که همچون صبره، کن درش صبر هست سبر در مقابل انجام ندادن گناه هم و سبر در انجام یک تا عبادت باطن همی که اجرش بدونه پاداش یعنی پاداشش بینهایت پاداشش اون قدره که الله بخواد خودش بخواد چون پاداشی که در رمضان هست در دیگر ماه ها نیست باید آدم قدر این ماه خاص از میان اون ماه ها بدونه فرصت را غنیمت بشموره، فیان بغیل ان ینتهزه، یل المومن ان ینتهزه ها دی فرصت، این فرصت ماهر مزار را غنیمت بشموره، فرصتی که غفر لهم اتقدم زنبی باشه، کنه ها بشه، فرصتی که جزء آزاد شدنگان از جهنم بشه، فرصتی که در حال رحمت باز بشه، مشمور رحمت الهی واقع بگرده، فرصتی که دعاش سجابت بشه، همه این هست، که بؤدین غنیمت بشموره و هی ممنن الله به علیه من ادراک شهر مغرب و لا سرینشی منتی که الله گذاشت که این رمضان در بیابه و در مقابل این دریافتن این ماه شک و سپاسش ادا بکنه سپاسش با چی با طاعت عبادت نه با قول نه با همه ادام میکنن الله را دوست دارن الله پراستن ولی الله کدوم یک از بندگان را دوست داره کدوم یک از امانه بندگان را میپسنده امن هو قانت انا فاجدا و قائما یحذر الآفر و یرجو رحمت ربه آیا این کسی که شب اصداده و تهجد گرگه میکنه سر و سجزه گذاشته از الله میترسه قانتون انا اللی اهل قنوت شب به تهجد اصداده آیا مثل اون کسی که نیصداده اون کسی که حقیقت رمزان در خودش ادا کرده با تلوات قرآن با دوری از معسیهت و گناه مثل کسی هست که شرمت چره را نگاه نداشته نگاه نامحرم کرده غیبت کرده دروغ گفته و بعد دیگر گناهان انجام داده هش. هرگز هرگز این دو این دو مثل هم نیستند فی سارع الطلعاد و احذر السيئات بس مصارعت و مسابقات، داشته باشیم به سوی طاعات و پرهیز از گناهان و اشتهااد و کوشش در ادای اون واجبات اعمالی که الله در ما فرض گردانیده وصن نماز، صیغه فرضه پنجگانه واسی ما الصلوات فقد انها عمود الاسلام ستون دینه نماز ستون دینه نماز, یعنی نماز نباشه یعنی دین نیست نماز نباشه یعنی دین نیست اولین چیزی هم که بعد از اسلاممون ایمانمون روز قیامت ازش سوال میشیم چیه نماز نماز درست سوت رقیه امانه نماز روز سوتشه یعنی و هی اعظم الفرائض بعد الشهادتين ولو ترين ركع بعد از واجباتنی واجبات بعد از شهادت نماز فالی واجب علی کل مسلم و مسلمه المحافظه عليها و اداها فی اوقاتها بخشوع و اطمئنان واجب بر هر مسلمان و زن مسلمانی که محافظت داشته باشه بر این نمازها و ادای اون در وقتش با خشوع و تمنینه حالا بعدن میاد که شیخ گناهکار میشموره کسی که نماز را سری میخوره پس نماز تراویح گناهکار میو هیچ گناهکار که کسی که فقط سر به زمین نک ب زمین میزنیم یاد بالایه گناهکاره نه اینکه سبب نداره بلکه گناهکاره فردی که نماز را بدون تو معینه اون شخصی که اومد نماز کن بر اص خ دوباره نمازتون گفت تو اعید برای اصله اومد یاش کویه رااست چند بار خوندم گفتی که نمازم باطله دوباره بکنم. چیه نمازم گفت که اگر نماز خوی رفتی ولوکروس ثبر کن تو معنیه داشته باش سپس. بعد از اون بیا بالا تو داشته باش بعد از اون رو به تو معنیه همین گفت و تو نماز باید مادرش خشور داشته باشی. همطور در حدیث داریم که یک فرد فردخصص ساللم که نماز میکنه کامل داره از ده ده و یکی نه دهم ده یکی هشت دهم یکی یک دهم ده و یکی هیچی از نماز نداره از بس سر نماز ذهنش دلش مشغوله از بس که دل و ذهنش مشغوله و این ما کوتاهی ما هست. یعنی، در انجام این عبادت و این نیایش با الله حرف با خدا داریم می الحمدلله الحمدللہ رب العالمین نیایش فروردگار راستتایی شد این توفیس بادی که من بیستم برات نماز بکنم بندگیت بکنم سبحان الله انسان خیلی نقش بندگی دنیا را خوب ادا می کنه. خیلی ما برای دنیا خوب بندگی هستیم برای دنیا خوب بندگی هستیم آمیزی قشنگ میکنیم مبلمان قشنگی بخریم ظرف و ظروف قشنگی داشته باشیم. حولمه قشنگی، موبایل شیکی. موبایل قشنگی، وژن جدیدی ماشین کلاس بالایی. خوب دنیا پرستیم. خوب آهم پرستیم. خوب ماشین کلاس بالا و کلاس پایین میخوایم. خوب ماشین ژاپنی را از آمریک تشخیص میدیدیم. خوب ماشین آلمانی به از مررسز تشیت میدیدیم میگییم که به این ماشین. خوب بنده مالیم بنده آهنی بنده دنیایی باور کن این بندگیت وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه، خار و آله께서 تعف خار ذلیل و عبد درهم بنده درهم و دینار این درهم و دینار میگه چی میگه نه همین ماشینه میگه نه همین موبایله نگاه ظاهر نگاه دنیا خدا نه خداوند از با... از مشرکین چی میگه صفته مشرکین یعلمونه ماهر ظاهر فقط دنیا میگیرن فقط ظاهر تظاهر ظاهر این ماشین شاسی بلند ماشین کلاسه بردگی دنیا رو میکنه شب و روز میکوبه که بغت به این ماشینه وقتی که ام سوار این ماشین شد دیگه نگاه چپ نگاه نمیکنه پایین دستش نگاه نمیکنه نگاه بالا میکنه تا که بهش نداره بده تو غرور و کبرت اثر روش میباره غرور و کبر. به زبان نیست که بگی ما من متکبرم من متکبر نیستم غرور کبرت همین که سوار این ماشین شدی و به خودت می نازی و بنده این مالی اگر خطی روش افتاد اگر آسیب و صدمه دید جانت باهاش می سوزی به خودمون مثل شمعی گداخته می شی می سوزی بخاطر اون مالت که از دست دادی اون مالی که هم نعمت خدا بود مال خداست امانت خداست و دست تو چقدر خد فرقه بین ما و بین قدیمیان من... یعنی یعنی آدم جلو خداوند برم از شرمندگی هر چقدر عشق ریزه و گریه بکنه از اون شرمندگی در نمیاد یعنی تعلق ما به دنیا مابستگی ما به دنیا و قدیما به دنیا صرف مومد دنیا صحابه ایمون ای اون زن صحابی و شوهرش بیاتونه از غضب برگشته بود اومده بود بعد بچهش فوت میکنه همسرش بچه را میخوابونه کنار خونه ایم. در پارشه ای شب که میاد خودش هم مجهز میکنه و با همسر و شوهرش هم خوابی میکنه بعد میگه که صدای بچهمون نمیاد نیه خوابه خوابه مرده خوابه مرده هم یه خوابه بچهشه صبح که بیدار میشه میگه چرا بیدار نشد گفت که فوت شده گفت که فوت نشده تو این همه خودت تو زیباست وقتی برای من شب هم خوابی بکنید بعدم بچه من هم مرده و پیش رسول الله کردیم که دو تیار رسول الله این زنم این کار رو هم کرد این زنم این کار رو هم کرد بعد رسول الله صلی دعا بهش کردن که خداوند در جایگزین اون بچه بچه‌ای بهتر به بده بده بهتر بهترم خدا بهش داد اما اون چیزی که من مد نظرم تو این قصه اینه اون زن نگاه بکنید ایمانش رو محاکمه بزنید اون زن ایمانش رو نگاه بکنید با خودمون سیاسی بگیریم گفت که ای همسرم دیدی اگر خدا امانتی یک کسی امانتی به کسی داد همسایه امانتی داد بهمون بعد رو پس بدید چی میگید ما امانتو بده میخواد تسلیت بده، میخواد دلداری بوده به شوهرش میخواد خبره خاطر کردنش رو بده میگه ای فلانی بچه مونم امانتی بود خدا داده بود از ما گرفت این مالی که تو خدا بهت داد نگو از بازوی خودم بود نگو از سلاح خودم بود عزیزش نکن جلوه چش خودت همون بال پشه که من گفتم صحبت اولم مال دنیا میگه خداوند صاحبشه و میگیره چه فرزنده، چه ماشینه، چه منزله، حالا اون کسی که زده میشه، زلزله میاده، هر چیزی که میشه. مال خداست، امانت خداست. میده و میگیره. میده و میگیره. تو ای بنده برده این بال نشو، برده این دنیا نشو. هممقم دنیا نباشه، هممقم این رمضان باشه که نمره چند میگیری از این رمضانت همموقع متین باشه که در نمازت نمره چند میگیریم. گفتم ما بندگی دنیا رو خوب میکنیم ولی بندگی خدا رو نه خیلی اون کاشیکاری که میاد کاشی بکنه توی خونه یا اون نقاشی که میاد رنگامیزی بکنه خیلی روش نقطه گیری میکنیم چند گردنگیز باشه این شرسی که ما داریم توی ظاهر دنیامون آیا اینقدر حریصیم در نمازمون؟ این نقطه های سیاه نقطه های کور این نمازمون بر بشه وقتی که میگیم الله اکبر الله تو بزرگتر از همه چیزی الله اکبر از همه چیز بزرگتره دنیا را پشت سرم میذارم برای الله غذا را کنار گذاشتم حرامه بر من پروردگارا نوشیدم بر من حرام الله اکبر الله از دنیا بزرگتره حرام میکنم بر خودم آب حرام بر خودم میکنم گفتم الله اکبر الله از همه چیز فعلم اینه ولی اعتقادم چی ایمانم چی نگاهم چی به اون لفظی که من دارم الله اکبر سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم این مهمه کمرنگ شدن در این های ما که سبب غفلتمون شده سبب دوریمون شده چون اینکه ما از بندگی الله دور بشیم ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أدن الله أن ترفعها ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركع مع راكع نماذجها در القرآن خطابة ما مرده ثم ولا دليل نريك آن در جماعات در مسجد واجب يا واجب نيس الله در القرآن أزمن الشماخ شخاص وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركع مع معان راکعین و اونیک رکوع گه با آنها رکوع بکن یعنی در جماعات سبحان الله ام ام سلیم یاد بگیریم در صلات وقتی که به منزلش و خیار رسول الله کجا جماعت جماعت بخونم تو منزل یک جای مشخص کن رسول الله اونجا نماز میخونه پشت سرش انس و برادرش و پش سرش اون زنه میته و سلیم میسته و نماز میکنن و از اون به بعد اون زن برای اهل اون منزل نماد جماعت میخوند مادر با دخترش در منزل نماز جماعت میخونه یا نه مادر شوهر رو نمیدونم اون عروسش نماز جماعت میخونه یا نه چرا ذله ها با هم دیگه صاف نیست چون حاضر نیستن کنار هم دیگر بیستن کدورت پیش میاد اختلاف پیش میاد غیر ممکنه ما ملائکه نیستیم بین ابو بکر صدیق و عمران بن اختلاف پیش اومد بین ما چطور پیش نیاد این مسئله میگم چون رفت با نماز داره یکی از حکمت های تشیئن نماز همینه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: لاتصورون سفوفکم یا خلافان الله بين قلوبش. سفر نماز رو درست می‌کنید یا قلبتون خدا تفرقه توش می‌ندازه. یعنی چسبیدن به هم دیگه، کنار هم دیگه. در نماز درست شدن، ظاهرمون در عبادت قلبها رو فاقد می‌کنه، کودرتها رو از بین میبره. الله واقع. وار کعب مربوطه. یکی از, از مقصده نمازه. نمازه در جماعت، کودرتها از بین بره، کی ناز بین بره، عقده ها از بین بره. الوقف تصديق يحيى بيقول عمر خطوه بيزني عمره خطوه انه راح نمشه يجي بمعنى ناصزا گفتي نميبخشمه اوقات تصديق انه راح نمشه يجي حرفا رو برمي كنا نه ميبخشه من نزد رسول الله الله عليه وسلم رسول رو الله اما انتم لي صاحبي صاحبهم قرار نتبع من برهاب وقريت نقريت اختلاف بين دوتناس أصحاب رسول الله انسانة خطار زشتار ميزانا ولكن اعتراف بخطار مهم اعترافه بخطار ربش انبياس آدم عليه السلام ربنا ظلم لأنفسنا يونس عليه السلام لا إله إلا أن سبحانك إني كنت كنتم نظر نوكن دار, دار كل زندهي مو اگر نتنسيم بتذيرين كما ظالمیم نمظلوم میتونیم موفقشیم میتونیم بندگی را بجاییم ولی اگر نه نمیتونیم مظلوم نمایی ما یا مظلوم پنداشتن ما اینکه ما خودمون مظلوم به پنداریم سبب بیشه ما تبدیل به انسان انسان ظالم میشیم دو زیب از ساختمان خونه مردم بریم بالا مال دیگری را بخوریم و و و و ایلاکارا. یونس علیه السلام سالها دعوت میده قومش امتش حاضر نیستن حرفش رو بپذیرن ترکشون میکنه یه جا اشتباهه. منتظر فرمان الهی نشد یک جه الله اسیرش شد شکم النهای اسیر شد اسیر یک گناه یک اشتباه مثل قصه منقذ ریا تکرار که علاقه یک عمره ماده قهلاد بن امیه بود براش گفتن در جنگ تبوک که رسول الله 50 روز به اونها حرف نگفت سخن نگفت به چی به یک گناه نه رفتن به یک غزوه یک جهاد جو یونس علیه السلام الله عذابتش میکنه تا این که سه هم تکرار میکنه لا اله الا ان سبحانه که اینی کنتم نظالمید من اشتباه کردم امتی دعوتش رو قبول نمیکنن سالیان سال ناسده بهش میدن اذیتش میکنن آزارش میدن ولی این خدا میگی چی؟ من اشتباه کردم من ظالم بودم هرگاه مصیبتی به رسید در زندگی از چش کسی ندون لده به من کسبت نیدی. همیشه از خودت بینو، حتما من, من تقصیری کردم، حتما من, من اشتباهی که طرفدار رو در جای من رو اگر تو خودت مظلوم دیری، سعی میکنی که انتقام بگیری، سعی میکنی که از حق دفاع بکنی. چرا؟ تو مظلوم واقع شدی. انسان مظلومن وظیفه‌ش که از خود دفاع بکنه. اینی که من ابتدای بحثم گفتم بحث ابراهیم الکه اللذین الله در تمامی چیزها هست در گفتم در دعوت با مردم و در ارتباط ما، رختار ما با خدا خیلی از مشکلات غیر ممکنه مای که اینججا نشستیم هر کدوم از ما مشکلی و مصیبتی در زندگی نداشته باشیم غیر ممکنه بشری روی زمین پیدا بکنی بدون مصیبت هر کسی هم مصیبت خودش بالاتر از دیگری میذاره هر کس بلی ما باید دنبال این باشیم که چی چگونه خودمو رو متسلی بکنیم مثل پیامبرانی که که, که شکست نخوردن با اشتباهشون بلکه خودش رو به خدا نزدیک کرده. اشتباهت نباش سبب بشه که تو از خدا فاصله بگیری بلکه این اشتباهت سبب بشه که تسنب سجده و عبودیت بذاری و بندگی خدا بکنی مصیبت نبید نعمته اون مصیبتی که میاد دردی که بهت میاد اون رو مصبحهش مصیبت نگاه نکن درد نگاه نکن نگاه این کن که اون مصیبتی که بر دوشت نشسته کمرت تو میخواد خم بکنه که سجده الله بکنی بذاری و دعا بکنی پروردگارا تو رحیمی مرا ببخش تو غفور لو که چقد ما در روز سکرار میکنیم؟ اللهم اغفرلی رسول الله در هر مجلسی میگه الله اغفرلی بعد از هر نماز صد بار میگه رب اغفرلی کیه رسول الله صلی الله علیه و سلام گناهانش هم خدایا ما قبل ما بعد بخشیده منوش شما چی گرد خاک پای اونها هم نمیشیم نه از تاب و نه پیغمبران خداوند کی مبعوث کرده این همه گناه و این همه معصیت داریم توقع چی داری من همه این حرفا رو دارم میذارم به خاطر بحث چیه بحث عبودیت بحث لذت بردن از اون عبادت صحته تو تا وقتی که اقرار به گناه نکنی قدر اون سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم که در سجده و رکوع نه میدونی اگر اقرار کردی که من بنده مقصرم این سبحانت و تسبیحت تپاک من الزهی در وجودتو شکوفا میشه معنای این تسبیح معنای این سبحان الله الله تپاکی من مقصر سبحان الله یونتا یکنون سبحانکه نیکنس من الظالمین تپاک من الزهی پردگار من خطا کر این تسبیحه این معنای تسبیحه که باید ما جلوه این تصویح را در خودمون ببینیم و در بندگیمون و این نماز را اصحادت ترتیب بکنیم به عبادت بندگیم وقال فعال حافظو على الصلاوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین قوموا نماز را برپا بدارید خوصا نماز عصر که جمهور علماء هست و قوموا برپا بدارید همتون با هم لله قانتین و قنوت و عبودیت و طاعت من حقيقة ان عبد الله وقال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشونه. همش جمع الذين هم يعني مؤمنان كذار نماذجهم خشوع داران. إلى أن قال عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون هاي كذار نماذجهم محافظات مثل أولئك هم الورثون. ورثيا إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. إنما ورزوا العلم. فمن أخذها أخذه. كما قال عليه الصلاة والسلام فأولئك هم الوارثون اقر علم انبيارا قرفتي بعمل انهارا راه ربش انهارا قرفتي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشاب الأمور محدفاتها بيهترى راه, راه انبيارا راه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ارثت قرفتي ترى استقاري الذين يرثون الفردوس هداشش ارثت تو در ازای اون ارتی اون پیامبران گرفتی چیه فردوس و الفردوس هم فيها خالدون هم فيها خالدون وقال النبي صلی الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بينما العهد عهدك بينما هست و بين مشكين نماز فمن تركها فقد كفر ما خدا که نا عهدی کردن و ما عهدار و عهده داریم فرق مبانها در این عهده است ایا از این عهده برمیان ایا از این عهد و پیمانی که با الله بستیم در این مقابلین شهادتین که گفتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گواهم بدیم که الله معبود بحق فقط کورا بپرستیم و اون پیانبری که فلسوسیت پیانبر خدا صداشت حرف بپذیریم آیا واقعا حرفشنو پذیرفتیم این تعهدی که از ما گرفت این پیامبر یعنی حرفش رو دوش بدیم گوش یا نه این فرق عهده ما متعهدیم وقتی که تو نمازت الانشه در جماعت نماز نه کی نماز نخوری نماز در جماعت ادا نشی یعنی تو به عهدت که تو به عهدت عمل نکردی انسان نااهدی است و سلامی صفات منافقین چیه اذا عهد غدر غارت غد میکنه عهد چتنه عهد با بنده چهد با خدا عهدت را یا را اون میساق، اون پیمانی که خدا ازت درفت، روش سوار، اون شهادتینی گفتی، روش سوار بمان. العهد الله دینا بنو استمن ترکها فقد که بدون کترک نماز کفره. و اهجم الفرازی بعد الصرا، آداء الزکات بعد عبال شهادتين بعد نماز بعد زکات. کما قال عز و جلّ و ما امره ایاله الله مخلصین له الدين حنفاء و يقيم الصلاة و يوتّزكاء عهدك بعد نماز امرك شده بعد نماز دادن الزكاة و دين و القيّمه استواره و دينك الله قبول داره نينك نماز من نماز ميکنم و لزكاة نمیاد و قال تعالى و يقيم الصلاة و يوتّزكاء و الرسول لعلكم ترحمون اما رحمت الله مشهود باشه نماز بخود وقد دل كتاب الله العظيم وصنة رسوله الكريم على أن من لم يؤدي يؤد زكاة ماله يعدى به يوم القيامة ترى ذلك الحادث الماضي لأنه يبحث زكاة نيس هذه الحادثة التي لا يرشح بمضرحه الله هذه الحادثة قراءة القرآن وهذه الحادثة زيادة بل إنك كسك الزكاة ندد زكاة ما لشهر ندد الله رزق قيامات عقوبات شميكو نمع عذاب شميدي عقوباتش میکنه و عذابش میده اون کسی که زکات مالش رو نده برخذر باشه اون کسی که مالش رو داره مالش محاصره بکنه و زکات مالش رو بده و اهم الامور بعد الصلاة و صدق الزکات صيام رمضان پنجمی هم حج اول شهادتین بعد نماز بعد زکات بعد روزه و آخری هم حج حج که در بعد از ولی اومده اول حج بعد روزه ولی صحیح روزه بعد از زکات و بعدام حج بشتر رباط، منتقدر دا الحديث ذری، بنيا الاسلام على خمس شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة وإيتار الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هم المور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضان وهو أحد أركان الخمسة المذكورة في قوال نبسا بنيا الاسلام على خبس بنيان استنيقا يرهاي اسلام انفان شرس حتى اقل چهزك الله هزمه ببادره وقالت الاعراب آمنه کلّم تؤمن و لکد قلّه اسلام نه. فکیت ما اسلام ولی این حداقل حد که عربان حداقلش فذی رو فت میشه نمازای فرد پنجگانه، زکات دادن و روزه گرفتن و حج خونه خدا. این حداقل چیزی که الله عزیز میفزیره. مثلا اون عربی میگفتی ارسطو اگر این پنج تا چیز شهادتی رو نماز نمازو خوندم، زکات رو دادم، روزگرفتم، رو حج انجام دادم، سنت نوابیل انجام دادم، بیشتریم. افصال کفر افلح این صدق اگر حقش رو ادا کردیم منطور که الله ازش خواسته این چیزها باجد بقیه نوافل چیه؟ جاهای خالی که از نماز ما به جا گذاشتیم از خدا غافل بودیم اونها رو پر میکنن سنتها ها سنتها جاهای خالی و اون نقصی که در اون نمازهای فرزه رو جبران میکنن قال و يجب على المسلم ان يسون سیامه و قیامه و عما حرم الله علیه من والاعمال دوباره برگشت به روزه انسان مؤمن باید در روزهش و قیام و باید وظیفه مؤمنهی واجبه که خودش را مسون بداره از اون چیزی که الله حرام کرده از گفتار و رفتار و رفتار حرام گفتارها و رفتارهای حرام لان المقصود بسیام هو طاعت الله سبحانه هدف از روزه اطاعت الله و تعظیم الحرمات دون سنه حرام نگاه کوچیکی گناه نکن نگاه اون بزرگی که تو از دستورش سرپیش میکنی هیچ وقت نگو که این گناه کوچکه الله میبره بگو پرورده را تو بزرگی و تو مرا رو میبینی من نباید این گناه رو کوچک بشمارم چون این گناه انجام دادنش سرپیش از دستورت هست از دستور سرپیچی نمیکنه پرورده چون بندت هم چون بنده هر گوش کنم چقدر مثلا تو مدرسه نسب میبینم نه دانش آموزان مثلا حریس بر اینکه نمره 20 بگیره. والله این یعنی انسان میگم یعنی از شرمندگی هم اونقدر واسه بره از اینکه در مقابل پروردگارش در خودش این انگیزه رو نداره که تلاش بکنه که نمره 20 رو بگیره چه شرمشه یعنی. نفس هست، کوتاهی هست ولی زشتی کجاست این که ما انگیزه اینکه نمره قبولی رو حداقل بگیریم هم نداریم باور کن یعنی اگر ما نمره قبولی بذاریم از نمازمون نماز اشامون اگر قبولی رو بذاریم از 20 من باور کنم نمره قبولی با خودم نمیذارم الا خدا خودش از ما قبولی بکنه یعنی بگیم از این 20 ده بگیریم شاهکاره هم میدونیم که ذهنمون چقدر با خداست چقدر این نیازه واقعا حقیقیه اون کسی که بگه که من از 20 20 میگیرم واقعا انسان متکبر و مغروری از خودمونه شاید هم بشه از خودمون میدونم از دل کسی آگاه در بدی من به نسبت خودم میتونم قضاوت بکنم که اگر نمره قبولی بهم به بدن شاهکارم، شوهکار کردم و جهاد نفسی علی مخالفت هواها فی طاعت مولاها جهاد مبضتن انواع جهاد جهاد داریم جهاد مبارزه مو با دشمن داریم مبارزه با شیطان داریم با هوای نفس هم داریم انواع جهاده من قیم میر رحمة الله حتما توصیه میکردم کتاب غات الله پا رو معروف شده به فارسی هم ترتیب بسم به ما باید با شیطانمون بجنگ. باید بجنگ. با هوای نفسمون بجنگیم باید بجنگیم جنگه باور بکنید دنیا دنیای جنگه دنیای جنگه که تو جلوبت ابزار و وسائل بازی باشه نمیگم حرام نمیگم انستگرام و برنامه های مبتزلی که توش انواع انسان های لغت و عریان نمیگم نمیگم همون بازی که تو موبایله مجاهدت میخواد که بگی من ذکر خدا میکنم من سه بار ستا را میکنم یا ده بار قل و الله احد را میخونم که ختم قرآنه به جایی که بیام یه بازی بکنم اتاری بازی نمیدونم هر نوع بازی که باشه. این جهاد میخواد مجاهدت میخواد صبر نفس بر صبر تا... نفس خودمون بر طاعت الله، بر عبادت و دوری از گناه ها و لهو و لعب. لهو و یه جایی ما میگیم بازی مباحه چون درش برزش بدن قوی میشه، بدن قوی شد در مقابل امراض اینا نمیدونم مسون میشه و الی آخر. ولی جایی نه، فقط درگیری ذهن غفلت از نماز و طاعت اون, جه... اون مجاهدت نفس رو در اون نفسی میری که بر خودش الزام بکنه خودش رو یعنی بقول من رو یک کشش یک تلاشی باشه بر خودش مبارزه با هوای نفسش بکنه که من خودم بر خودم نفس خودم غلبه میکنم به جایی که این پای موبایل بشینم دو جود قرآن میکنم یه جود قرآن میکنم جهادا الان بخوزم با این ابزاری که در دست ما هست ابزاری که در دست ما هست این یه جهاده الان من یکم بحث و باستر میکنم. هم اصلا امروز روز جمعه بود سوره کهف به بیشتر سوره کهف سوره کهف در انواع جهاد توش هست انواع جهات توش هست چارتا قصه محور کل این سوره چارتا قصه هست چارتا تا داستان اول اون اشخاصی که در امت مشرکی بودن که به خاطر دینشون فرار کردن، مجاهدت کردند، و رفتن به غاری پناهنده شدن که عبادت الله یکتار را انجام بدن. فتنه چی بود؟ فتنه در دین بود. اگر میموندن شاید گمراه میشدن. برای نجاتشون از کفر و شرک فرار کردن. مجاهدت میخواد. مجاهدت میخواد تلویزیون، ماهواره جلوبت نمیدونم فلانه نگاه نامحرم نکنی. مجاهدت میخواد. مجاهدت میخواد به بسائل لحب و لعب بخونی. رمزانه تو به خودت الزام بکنی من بگم من امروز روز پنجاست قرآن می کنم مجاهدت میخواد خواد کنج خونه بشینی مثل اینهایی که پنفری به قاطر دینشون فرار کردن غار پناهنده شدن تو پناه بیاری به قرآن خدا جهاد این یک از درس های سوره که درس بعدی جهاد در مقابل مال دنیا هست که پیشمون عزیز نشه مغرور به مال دانمون نشیم به فرزندمون نشیم الله مثال چی می‌زنه فتنه مال دنیا اولی فتنه دین فتنه دومی فتنه در مال دنیا و دنیا باغ داشت چشمه داشت در باغش می‌نوشید به خودش به مالش هم مال داشت از اون یکی که مالش کمتر بود اون بهش متذکر شد گفت که نگاه کن مال مال خداست تا شاید ازش از بگیره گفت که نه نمی‌بینی این همه رودو این همه باغ و که من دارم ناز مغرور نشو بنده به مالت به جسمت به بازوت با تا چیزی میخوای دیگری رو کتک بزنی زوروازی می‌گه بچه‌های کوچیک مثلا دیدی که مثلا یک بچه‌ای هیکلی بیشتری داره می‌خواد دیگری رو کتک بزنه نناز هیچ وقت با خودت نناز هیچ وقت نه میگم حالا بحث علمم میاد اینجا زوروازی و مال دنیا هست هر چیزی که متعلق به ظاهر دنیا هست هست مجاهدت میخواد که تو وابسته نشی بهش با اون با اون ماشینی که داری به اون منزلی که داری مجاهدت میخواد که تو وابسته نشی مجاهدت میخواد اگر از دست دادی در مقابلش سب داشته باشی فتنه سوم فتنه علم اولی دین دومی دون... مال دنیا و دنیا سومی علم علم من به علمم مغرور میشم کتاب دیگه مطالعه نمی کنم. میگم هم قدرم کافیه میچستم به کارم به شغلم علمی که میراث انبیات علمی که الان ما داریم میخونیم از آیات قرآن و احادیث را صدا گفتم ابتدای صحبتم هم همین بود رهره بش علما رو رو بگیریم نه باکنید علما وقتی که قدر پیامبران و دین خدا رو دونستن نه باکنید نه اینکه صحیح بخاری فتح الباری را 20 بار میخواند چون قدرش رو میدونستان ولی ما نه ما باید مجاهدت بکنیم نفس خودمون رو بر از زیاد در اب قرب زدنی هل ما بکند می خداون رسول الله صلی الله علیه و سب قرب بزدنی علم چه در صدای که تویی که ادعا که من رهره راه, راه رسول هم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تكي ادعوا لمحبة الله ردري شقد براه رسول الله السواري بالاتباعة رسول الله در ازيادة دار علم قل ربي سيدني علما شقد حديث خوندي شقد تفسير خوندي شقد آيات القرآن درس تدبر كذين شقد فرق بين تو وما أبو جاهل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها شقد فرق بين تو علم علم جاي وقتك إنسان بيك مقداری از اون اتفاع میکنه وقتی که در فتنه او را می اندازه س میشه که اتفاع بکنه سبب بشه که دیگه مجاهدت نکنه برای از زیاده از اون احساس کمال بکنه در خودش یک غرور بهش دست بده دیگه مذاکره و نشستن در حلقات علم را ترک بکنه یک دورانش چک داشت برای نشستن در حلقات علم و نوار ولی الان دیگه فرسوده شده کونه شده و همه براش تکراری شده معنا نداره این نشانه چیه؟ ضعرف فتنه موسااح هست آه. گفتن وقتی که صحبت کرد برای قامش گفتن دیگه از سو داناتر هست که نه خداوند گفت نه موسی از تو آن داناتر هست کهیه خز در که کردین ب خب در حالی ساری بعد خداوند میگه برو پیش خ از تو دااتره. فتنه علم موسا هست بیام بره خدا هست نسبت به اون امتحان میشه میگه و تو چی از با با اوا درست ی نه از در فتنه دین میفتیم جای بدت انجام بیم شرکی انجام بین. جایسثنه در دنیا بیفتیم مثل اون شخصی که به مالش مغرور شد چی هست که نمیشه جایی در فتنه چی فتنه علمی بیفتی هم تو که اینجا پیامبر خدا هست بعد میره میگه قصه خضر رو کشی را سوراخ میکنه دیوار رو درست میکنه و اون اون چیزهایی که مقدر بود خز میدونست و هایی که از موسی خدا پنهان نگه داشته بود موسی نمیدونه سر احسان الله علمش رو به خضر بود خضر هم پیامبری پیامبران خدا بود جا فتنه هست راه نجادشیه طلب زیاد هجرت برای طلب علم مجاهدت برای خوندن و مطالعه زیاد علم همونطور که موسی هجرت کرد برای رسیدن به کی؟ خیزر هجرت کرد بگه اولین کسی که برای طلب علم هجرت کرد علبا در علم و مصطلح حدیث میارن کی موسا علیه السلام مجاهدت بخاطر طلب علم مثل الان شمایی که نشستی مجاهدت میکنید زن و بچه را رها کردید یک علمی یک حرفی از رسول الله بشنوید اینکه من حرف منو بشنوید نه هدفمون این بوده که یک سخنی از رسول خدا درباره رمضان بشنوید اصل هدفمون مذاکرهمون بر اینه و آخری هم فتنه حکمه کسی که حاکم شد حالا میخواد حاکم مدیر یک مدرسه باشه میخواد شهردار باشه یا میخواد استاندار یا فرماندار باشه حاکمه اصولی داره برای خودش حکم. کی ضول قرنین ناب کنیدید چهار تا این مرتبه هر چهار تا رسولات در آن واقع شده. مثل مثلا ما زندگی صلی اللہ علیه راسلاماصلم در نظر میره. ابتداش یک بچه این بود هیچ وقت طرف مشرکی نرفه بطی نفررسید. بطی بود مثل این جوانایی که فرار کردن به دینشون رسولات دهی مشرتی نبود و سر به سجددهبطی نگذاشته. ابتداش چوپانی کرد صاحب مال شد با مال اول چوپان بود بچ... از بچگی چوپانی می و بعد مرحله دوم صاحب مال شد با مال خدیجه رضی الله عنها چی؟ تجارت کرد صاحب مال شد. بعد صاحب عرش شد. بیانبر شد. مرتبه آخر صاحب چی شد؟ حق شد. حاکم شد. كل قبائل, كل قبائل عرب جزیرات العربی زیر فرمانش در رمدان. رسولا شد حاکم. لشکر و ارتشی داشت. رفت. جهاد با روم حکم اصولی داره احکامی داره رمضان روزه میاد باید تو احکامش بدونی نماز تو باید احکامش بدونی صلی که ما رأی تو بینید ارکان قبول رکن ارکان قبولیت عبادت روی دو چیز استواره و هرچک سبومیش هم بعض اضافه میکنم بینن اولیش ایمان بعد اخلاص بعد, بعد آخریش هم یا دومی یا بگیم یا سومی. بعد اول ایمان و بعد اخلاص بعد مطابعت اون طوری که و سالسلام برش بوده حال این چه میخواد تعامل باشه ماله فتنه مال کار و بیه فتنه ماله چه میخواد بحث علمه من این دنوان داعیه طالب علم میخواد دعوت بدم فتنه و چه میخواد اون شخصی که میخواد نماز بخونه روزه بگیره همه این ها باید دقت داشته باشند من خواف ادلج و من ادلج بلغ المنزل تو كما قال عليه که والسلام، اگه اشتباه در اشتباه بیفته، اون اون شخص مواظب میشه. مثل شبی که شب هنگام شخصی سفر میره، مواظب میشه که سر پا نخوره، سنگ زیر پاش نیاد. اگر ترسیدی از خدا مواظب میشه که نماز درست بشه، ولی اگر نه نترتی ضعیف میشی، سست میشی. حال تو خودت، ترست را با خدا، با نمازت امتحان کن. در این در این نماز چند میگیری؟ اگر از از ده یک میگیری، دو میگیری بدون که از دو از خدا میترسی. و بقیه از خدا غافلید از خدا نمی ترس از خدا نداره الله استغفارات من فقط خودش میگذره حکمم گفتم همونطور که این نماز و اطاعت و عبادت و روزه و قیام و اینا برای خودش ارکان و اصول و روشی داره حکمم همینطور روشی داره زلقرنینه شکومت داری رو خدا بهمون یاد میده تویی که حاکمی تویی که پدری در خونه و رجل مسئول عن رعیتی، والمره راعیه فی بیت الزوجات هست. راعیه است مرد برای راعن اهل بیتش مد راعیه حاکم یعنی اجرای حکم خدا را می کنه اصولی داره حالا اون حاکم و بیشتر در این قضیه وارد میشن در قضیه زلقرنه اولین کاری که زلقرنه که مثلا الان شما, شما در قصه زلقرنه اگر نگاه کنید در سوریه کرد اولین چیزی که ما می بینیم در قصه زلقرنه نزول از حرش پادشاهی و حکر به نشست با مردم مردمی که این لا یفقهون قولا حرف نمیدونن نمیتونن باهاشون مخاطبه بکنن اینجا نروید شما مثلا در اصول حکرانی اصول رو میبینید تعلیم اینا حرف نمیدونن حرف یادشون بدن باهاشون مخاطبه بکنن پایین آمدن از اصول و حب و یعنی با مردمش آدم مردمی باشه بره مردم مشکلاتش رو ببینه این اصول حکرانیه بشینه با بچت بشین مدیر مدرسه است با دانش بشین اون غرور تبر سرت نش خودتو فاصله بدی خودتو بزرگ بدونی یا بشماری خود رو بالا نگی آناس رضی الله عنه میگه رسول خدا نگو که چرا این کارو کردی چرا نکردی. رسول الله صلی الله علیه و هیچ بچه ای رو خورد نمیکن آناس رضی الله عنه یک بچه اسهم میگه رسول خدا نگو چرا این کارو کردی چرا نکردی. هیچ وقت تو بی خام اگر مشتمل میکردمو تو بی خام حتی در قرآن شما ببینید مثلا ابراهیم با سلیمان این رأیت فلبنامه آنیال بحک دیدم در خواب کتودارم زحمت میزد بیم کنم. مشورت بکن. کار میکنه؟ یا بنیا این رأی اسماعیل، شخصیت دادن به بچه. تو ی حاطی که بالا نشستی، تو شهدا، تو ام مدیر، خاکی شو با مردم. ببین، ترددشون رو گوش بده، تو مسئولی در مقابل اونها، با بچه نه خط تو سری بهش، خردش نکو. چرا رسول اصلا میگه مرسول یا نک به صلاته السع و ضربا فی العجه؟ 10 ساله تنبیه کنید. اونم تنبیه نوعش مشخص شده. چه به همسر و چه فرزند، اونم به طوری که مبرح نباشه، جا نذاره رو بدنه بچه نوعش مشخص شده یک تنبیه با مثلا خوشه‌ی گندمی یا مثلا یک چوب نازوتی اونم کوچیک باشه هدف از تنبیه اینی که آقا به سمت طرف برای نماز بچه 7 ساله حق نداری کوسک بزنی هشت ساله حق نداری نه ساله حق نداریم چرا شخصیتش ضعیف برمیاد خرد میشه سر شکسته میشه بی‌شخصیت میشه سعی کن با شخصیت بارش میاری، سعی کن احترام بهش بذاری لیت من لا مهلم یجل کبیره و یرحم صغیرا نه راح اشتر بش این من میگم دیگر اصوله قواعده بر همه ما بخاط می کنه نه اصلا من به عنوان پدر در این مسئله واقعا ام که چگونه حکم کنم با همسرم چگونه حکم کنم با فرزندم و همین طور اون کسی که بالا نشسته در چه بگم شهرداری که گفتم فرمانداری چه استاندار چه رئیس جمهور چه بخواد رهبر باشه اصول و بلم کمان گرفتن از اونها ابراهیم علیه السلام اینجاست قسید القادنا قسید ابراهیم و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعيل کمان گرفت از فرزندش اثر فرزندش چ تو به خودت بیار کمکت بکنه اینجا رسول قرین اومد کمک گرفت از قوم بیای با هم صد بتادیم بیای آهن زاب کنید بیای سوره رو گداخته بکنید کمک گرفت از مردم, از مردم خودش کمک گرفت این اصول قرآنیه اصول حکمه رسول الله صلی الله علیه و سلام کمک میگیره از قومش کمک میگیره از از از یارانش مسائل مهمی هست گفتم که یعنی اصولی هست شاید مثلا من بگم خودمون خیلی عادی عادی و ساده از مقابل بشیم یک کهفی که نوری هست بین این جمعه و جمعه‌ی بعد مجرد یک سنت است ولی به معنای اون سوره و اجرای اون سوره در زندگی خودمون درش کوتاهی داشته باشیم به همین قد اکتفا و امام محمد علی محمد